سلامتی خودتون، خانوادتون، همه بچه و همه نوکرا و همه فدایای آقای امام زمان دوم صلوات و بلندتر خد بفن بسم الله الرحمن الرحیم اللهم معرفنی نفسک فنکه لم تعرفنی نفسک لمعرف رسولک اللهم عرفنی رسولك فانك ان لم تعرفنی رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفنی حجتك فانك ان لم تعرفنی حجتک ذللت عن دینی امام صادق علیه السلام میفرماید که در زمان غیبت آقا امام زمان این دعا رو زیاد زمزمه كنید اینشاءالله بچهها جوانترا حتما این دعا رو حفظ کنید و در روز چندین مرتبه زمزمه کنید بعد از نمازها بسیار ثباب داره خدایا معرفت امام زمان رو به من عنایت کن من یه چند دقیقه ای تا انشالله برادر بزرگوارمون بارمون بیاد و انشالله استفاده کنیم یه چند لحظه ای رو میخوام و همدیگه تو فکر فرو بریم فکر کنیم سیزده تا معصوم ما تاریخ و زندگیشون مشخص از وجود مقدس پیانبر اسلام تا آقامون امام حسن عسکری علیه السلام تاریخ زندگانیشون و اون معاشرتشون مشخص و تاریخ برای ما گفته شده طبق تاریخ های مختلف ما یه نگاهی اگه به زندگی این سیزده تا معصوممون کنین خوب دقت کنید میخوام نتیجه بگیرم از اون بحث یه مقایی ما میاییم مقایسه میکنیم مثلا میگیم پیغمبر اسلام یه شخصی یه پروانهی مثل وجود مقدس آقامون امیر در کنارش بود حالا به هر کی میگیم آقا علی کجا ما کجا امیر کجا ما کجا ما بیایم نگاه کنیم به کسانی که کنار پیغمبر بودن اما پیغمبر اسلام بهشون عشق داشت ببینیم چه کسایی کنار امیرالمؤمنین بودن اما علی بهشون عشق داشت کنار امام حسن بودن امام حسین بودن حالا ما معصومین رو نمیگیم ما نمیگیم کنار سن امام حسن ابی عبدالله بود حضرت اولفرد بود نه همین افراد مثل ما افراد معمولی من یه چند تا دونشو براتون مثال میزنم تا اینشالله تبه حالا وقت کوتاهی که داریم یکی از کسانی که در کنار وجود مقدس پیامبر اسلام بود سلمان بود وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم امام صادق علیه السلام میفرماید نگو سلمان فارسی بگو سلمان محمدی پیغمبر اسلام میفرماید سلمان من اهل البیت سلمان از اهل بیت من امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید سلمان لقمان زمان خودش بوده یعنی به حدی در مورد سلمان صحبت میکنن که اون عظمت سلمان رو ما نمیتونیم درک کنیم امام صادق میفرماید سلمان سه تا فضیلت داشت که هیچی نداره خوب دل بدهد شما جوانا راه رو چجوری پیدا کنیم یکی اینکه دوست داشتن فقرها و اختیار برعقنی سلمان بسیار به فقیرا عشق داشت فقرها رو محبت کرد. راه و روش امیرالمؤمنین ها در یه جایی میگه اختیار هوای امیرالمؤمنین بر هوای نفس خیلی قشنگه این واقعا خیلی قشنگه اختیار هوای امیرالمؤمنین بر اختیار نفس یعنی نفسش رو اصلا نگاه نمیکرد نگاه میکرد امیر المؤمنین چی میگه میگفت این درسته هوای نفس و میریخت دور محبت او به علما و عشق اون به علم سلمان در سال سی و شش هجری در مدائن وفات کرد امیر المؤمنین به امر خدا طی عرض کرد با حضرت جعفر تیار فرشته های زیادی حضرت خضر نماز خوندن بر سلمان خلاصه میکنم من اینها رو شما واقعا برید مطالعه کنید زندگی سلمان عوازه مقداد کسانی که پیغمبر اسلام وقتی که جبرئیل نازل میشه بر رسول خدا میفرماید که یا رسول الله به عبیزر سلام خدا سلام رسونده خداوند به ابیزر سلام رسونده پیغمبر اسلام میفرماید سایه نیفکنده هنوز آفتاب نتابیده بر سر زمین راستگوتر از عبیزر یه نگاه کنیم کنار سلمان، عبیزر، مقداد عبیزر اینقدر نماز میخون که چشماش کم دید شده بود انقدر شب بیداری کشیده بود مقداد میگفت اگر کل زندگی من، کل عمر من بشه یک شب من اون شب رو تا صبح عبادت و بندگی میم. اویس او قرن آی جوونا حواسمون باشه اویس او قرن مادرش بهش گفت میری خیلی عشق پیغمبر داشت از یمن اومد مدینه به دیدن پیغمبر مادرش گفت میری یک روز میمونی بعد یک روز برمیگردی اویس او اومد پیغمبر رفته بودن بیرون از مدینه برای جنگ یه روز وایساد پیغمبر نیومد این همه راه مدینه یمن برگشت پیغمبرم ندید احترام به مادر مؤمن اونه که معدلش بالا باشه نه اینکه ما یه ریش میزاریم یه انگشترم میذاریم دستمون شدیم مؤمن مسجدم میریم هم میگیریم معدل معدل اینا معدلشون بالا بود مقداد عبیزر سلمان در کنار امیر المؤمنین هجرابن عدی هجرابن عدی کسی بود که مستجاب و دعوه بود انقدر عبادت و بندگی کرده بود بریر کی بود حبیب ابن مظاهر کی بود؟ اینا وقتی زندگی نامشون رو میخونی نگاه میکنیم بریر قاری قرآن بود وقتی ابی عبدالله اومد بالا سر بره نشست گفت خدا بکشتون کسی رو کشتید که قاری قرآن بود حبیب ابن مظاهر تو یک شب قرآن رو ختم میکرد چقدر با قرآن فاصله گرفتیم ما؟ یکی یکی دارم میگم که نتیجه بگیریم و ببین راستگویی رو از عویزر یاد بگیریم، شب بیداری رو از مقداد یاد بگیریم، عبادت و بندگی و اطاعت رو از حجر ابن یاد بگیریم، از حبیب ابن مظاهر قرآن خوندن و اطاعت یاد اینهایی که کنار ابی عبدالله بودن کنار امیر كنار کنار امام صادق کنار سیزده تا معصوم ما غیر از امام زمان رو که میخواییم نتیجه بگیریم اینها کسایی بودن که راه حقیقت رو حرکت میکردن معدلشون بیست بود فقط این قرآن عزیز رو که واقعا در ماه مبارک باید قرآن رو بیشتر انایت کنیم این قرآن رو چقدرش رو آگاهی داریم تا کجا درش وارد میشیم چقدر تو زندگیمون تاثیر داره دو تا رو بلدم دوت بچه بچه مسلمان ها الان جوریم دیگه همه اونایی که مثل منن که الحمدلله مؤدلاتون خوبه اونایی که مثل منن دو تا آیه بلدیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایهاللزین آمن و استعین بالصبر به صبر و سلات اینالله هم نماز بخونید یا ایها آمن و کتب علیکم و سیام کما کتب علاللزین لحلکم علی تدقون روزه بگیرید تموم شد من شدم بچه مسلمون مسجدم میرم درم دارم, دارم. ریشم میذارم دیگه من پسر پیغمبرم اما یه لایق تب بعضا کن بعضا قیبت هم نکنید رو نکنید. لایسخر مسخر نکنید. لا تجسس تجسس و فضولی نکنید. ویل کل همزت لومزه. پشت سر هم دیگه حرف نزنید. چابروسی نکنید. اینها رو من یاد نگرفتم. اینا تو قرآن نیومده بد اخلاقی و خوش اخلاقی و اینا تو قرآن نیومده رسول مکرم اسلام فرماید من نیومدم مگر برای مکارم اخلاق. چقدر اخلاق داریم؟ چقدر جواب سلام میدیم؟ کسی نتونست بر پیغمبر در سلام سبقت بگیره قایم میشدن بچه که پیغمبر سلام کنن باز نمیتونستند. چقدر سلام میکنیم؟ همه سلام هم میخوایم تازه معدلمون اگه بیس شد اون وقت میشیم جزء اون سلمان و عبیزر و مقداد و بریر و حبیب و, و میشیم مثل اونا. معدلمون باید بیس باشه نماز خوبه که چیزی که توی الان توی این جامعه ما متاسفانه خورده بیشتر شده همش نگاه به کمیت میکنیم کیفیت ها رو از بین بردیم یه موقع میبینی یه مسجدی میاد میگه که آقا من میره امور مساجد قیافم میگیره هیکلم میگیره میگه من پنجاه تا پرورش دادم پنجاه تا پرورش داد اما یه مسجدی میبینی خیلی خازانه سرش انداخته پایین میگه من پنج قاری پرورش دادم اما پنج قاری اون پرورش داده بهش یاد داده قرآن یعنی زندگی بهش یاد داده که اگه قرآن میخونی باید معنیشم بخونی باید بهش عملم بکنی بهش یاد داده وقتی یک آیه قرآن میخونی لاقل یه دقیقه رو این آیه فکر کن ببین چی داره بهت میگه اون اونجوری پنجتا تا پرورش داده این پنجاه تا پرورش داده فقط میخونن رو خونی میکنن حالا چند سال بعد اینا پنجاه تا چند تاش قاری بمونن واقعا چند تاش قاری بمونن معلوم نی اما اون پنجتا تا آخر عمرش قاری میمونه چون قرآنه تو خونش رفته چون اون قرآنه رو فهمیده. بچه ها بیاید کمیت ها رو بذاریم کنار با کیفیت کار کنیم. نگیم ما چند ساعت امشب رفتیم حیعت. من امشب رفتم ساعت ده رفتم حاج سعید تا دوازده. دوازده رفتم تا دو من مطایری دو دو تا چهارم رفتم حاج منصور مسجد ارک چار اومدم صبونم رو خوردنشه سهریم خوردم و فلان رفتم تازه شاب دلازیم دعای ندبه چقدر گیرم اومد؟ چقدر گیرم اومد؟ ببینید این برنامه چیز ماه اصل یه موقع یه چیز قشنگی یه موقع نشون میده واقعا تحت تاثیر قرار میکردیم یه نفر اومده یه دونه بچه یتیم رو آورده مثلا سرپرستی گرفته با این یه دونه بچه یتیم شده خدایی چهرهشو شو میبینی واقعا نیت کرده یکی میبینی تا بچه یتیم گرفته اما نیتش خوب نبوده نگاش میکنی میبینی نه و داره یه حرفی دیگه میزنه ببین کمیت و کیفیته یه نفر شب پا میشه بیاد الان شبهای احیام هستیم دیگه. میخواد بیاد فردا شب احیا. از در خونه میاد بره بیرون پدرش پیر میگه آقا من میترسم تو خونه بمونم تو نرو مسجد مثلا باید بمونی خونه میمونه خونه من میام برم خانومم میگه آقا من راضی نیستم یا منم ببر یا نمیام میگم بارو بابا بشین با خونه من رفتم. میرم اونجا. من تا صبح میشینم اونجا گریه میکنم. ولی اون یکی که حرف پدرشو گوش کرده نشسته تو خونه با تلویزیون قرآن به سرش گرفته اون حرفشو خدا گوش کرده حرف منو گوش نکرده. چرا؟ چون وارد معدله که گفتمه. حاشیه شدم معدل رو از بین بردم حواسمون باشه یه موقعهایی تقدم و تفضل رو از بین نبریم حیئت امام حسین مستحبه تولا و تبرا واجبات هست اما اینها میشه گفت یه جوری مستحبه اما اون حرف پدر و مادره میشه واجب یه موقع درسمون حج اومده بود اینجا صحبت کرد گفت من درس دارم هیئت نمیام یه موقع میبینی درسه واجب تره اصلا روایت داریم یه موقع فکر کردن از عبادت بهتره شما تو هیئت نشستی یکی از یکی از برنامه‌های شب احیا فکر کردنه بشینی فقط با خودت فکر کنی در مورد اعمالت در مورد کردارت در مورد ا... کاری که میخوایی بکنی فکر کنی فکر کردن خوش عبادت نه آقا من میخوام برم سینه بزنم من میخوام خوب همش هیچ نحی نهی اما تقدم و تفضل و اینا رو باید حواسم باشه که کدوم بالاتره کدوم پایین تره من فقط خواستم اینو بگم که نگاه به یارای امام صادق کنیم نگاه به یارای امام امام حسن، امام حسن سیزده تا اهل بیت ما یاراشونو ببینیم ببینیم اینا چی جوری چیکار میکردن که اهل بیت ما اینجوری عاشقانه دوستشون داشتن حبیب چیکار میکرده که وقتی امام حسین داره پرچما رو تقسیم میکنه میگه این یدونه پرچم بذارید که این صاحبش میاد وقتی وارد کربلا میشه از زینب میگه سلام منو به حبیب برسونید حبیب گریه میکنه که من کیم که زینب به من سلام میکنه این حبیب کیه بیاید ما هم اون کارایی که اونا میکنن انجام بدیم اون وقت امام زمان به ما عشق میگرده اونا یارای سیزده تا اهل سیزده تا معصوم و ما نگاه کنیم ببینیم چیکار کردن که اینا عشق بهشون پیدا کردن ما همون کارا رو کنیم این چهارده همیه که آقامونه قریب مونده تنها مونده اونم به ما عشق پیدا کنه اونم موقع رفتن من موقع مرگ من بیاد سر من و مثل حبیب بگیره روزانوهاش بگه این نوکر من بوده نوکر واقعی ها ما رو ببریم بالا امام زمان میاد بالا سر این شبا همدیگه رو دعا کنیم. توبه کنیم. اگه کاری کردیم اعمالمون رو در نظر بیاریم. توبه کنیم. دیگه از حر از حر دیگه بدتر راه رو به امام حسین بست. آب رو به امام حسین بست. بچه ها تشنگی کشیدن. این همه عذاب. اما تا اومد جلو امام حسین سرشو انداخت پایین عوی عبدالله گفت برو برو به راه خدا انقدر اینها مهربونن که خدا شاهده یه عالمی صحبت میکرد میگفت اگر در قیامت دیدید ابی عبدالله شفاعتش امرم کرد اصلا تعجب نکنید اگر در قیامت دیدید امیر المؤمنین اوم شفاعتش ابن ملجمو کرد تعجب نداره اینا خانواده کرم من. وقتی تاریخ و میخونی و امیر امیرالمومنین میفرماید با ابن ملجم stripe. کاری نداشته باشید. اگه من شهید شدم اگه من کشته شدم اون وقت شما یه ضربه بهش بدنید اگه نزدنده موندم خودم میدونم یعنی چی؟ شاید اگه زنده میمون میگفت برو بی خدا هست اینا تره این شبا هم دیگه رو دعا کنیم این شبا دستامونو رو ببریم بالا الهی بگیم خونه علی چه خبر بود این شبا چه خبر بود خونه علی اما مثلا اومد نیا کردید پشت در بچه ها همه من فقط یه جمله میگم بیان دوستان اینجا لحظه ازشون استفاده کن من فقط یه جمله بگم دیلم خیلی سوخین و من دیشب خوندم همین روزه رو اصلا خودم اونجا آتیش گرفتم اما مثلا رو باید دچه ها کاسه های شیر گرفتن پشت درد نشستن حالا طبیب جواب کرده این نگاه بیم بچه ها کرد بچه ها طبیب بابامو جواب کرده طبیب بابامو جواب کرده برید شیراتونم ببرید بچه ها گفتن نه این زمان حال رو من میگم ما. ما تازه فهمیدیم اونی که شبا اومده در خونمون کی بوده ما تازه فهمیدیم اونی که نون و گندم به کولش میگرده برای ما آورد. تاریخ نوشته امیرالمؤمنین المؤمنین چهار دست و پا می یتیمو به دوشش میذاش صدا در می یتیم بخنده تازه ما فهمیدیم این امیر علیه ما اومدیم جبران کنیم ما اومدیم جبران کنیم امام حسن گفت برید دیگه بابام شهید شده برای برچه جبران کنیم دلت کجا رفت, رفت دلت برای بچه هاش جبران کنید ام نداره برید بابام شهید شد شما برای بچه جبران, جبران <متغفر> <خان آرائی متغفر> کنید کوفیان خانه آرائی کنید دلتو بردم یه جایی که دیگه راه برگشت نداره کوفیان ماشاءالله کوفرا علی برگردن اون بچه یتیما بودن ها کوفرا علی برگردن خفیا نقد تلاش کردن چی آوردن به جای کاسه شیر به جای کازه شیر دامنارو پر از سنگ کردن اارجانش سی صدا بیت زهرا الله